خانم آقایون دختر خانم آقا احتمالا همه شما می دونید که شمر بن زل جوشن توی فرهنگ ما ایرانی ها خیلی موجود منفی و منفوری بوده و هست و کلن ما ایرانی ها اگه مثلا به کسی بگیم مثل شمر میمونه یعنی داریم بهش فوش می دیم شنیدیم توی همین روزا توی همین هفته توی مشهد یه سری بیل زدن با عنوان تاریخ تکرار می شود و توشون تصویر شمر هم یه جورایی نشون دادن که البته خب خیلی سرش بحث بود چون ما متخصص نیستیم خب من خودم چون شخصا متخصص نیستم راجبش صحبت نمی کنم دعوت کردیم از متخصص شمر شناسی ایسکای پنچم به آقای جلال سعیدی از که سلام هستی کنم پروفسور جلال سعیدی متخصص شمر با دیلان و کیارسته می ره با دیگران حرف داره شمر که شمر برنامه شمره مونه قسمت این بوده دیگه. آقا چی بود جلال الان این داستان این بود تاسش این بود که این تصویری که تو این بیت بورد بود گمان زنی های این بود که یکم شبیه آقای روحانیه. آره دیدم. ولی آره ولی یه سریاهم گفته نه شبیه بازیگر نقش شمر، یعنی اون نقش شمر در سریال مختار ناماست که. که آقای فقیمزاده. نه نه محمد فیلیه. ها محمد یا فیلی یا بود. مار بباشن که یه فیلی محمد همشهریشون همشهری شهرامه میگه شیرازی بله. هست ارض کنم که این بند خدا آقای فیلی بابت این نقش کم اه... فیلی بله فیلی آقای بله. فیلی <تصفح> <تصفح> <تصفح> شم رو صدایشون بزنیمشن <تصفح> آقای شم بابت این نقش مشکل زیاد نداشته اتفاقا یه مصاحبه کرده با روزنامه جامعه جمعی هفته و گفته که من چند تا خاطره بامزه تعریف کرده و گفته که مثلا موقعی که این نقشه قبول کردم اول روم نمیشد تو خونه بگم بعدم <تصفح> که بچه‌ها فهمیدم بچه‌ها فهمیدم بهش یه لیوان آب که میگفتم بدین به من میگفتم برو با شی مثلا <تصفح> <تصفح> عجب بابا تو داستان ببین چی داستان دارم بازیگرا بعد یه خاطره خیلی بامزه دیگه گفته بود که زمانی که سریال داش پخش میشد این بنده خودم میگه که من یه روزی رفتم تاکسی سوار شدم تاکسی سوار شدم بعد تاکسی ظاهرا شمبره رو ورده ده سه سه اینا بعد میگن همین که منم سوار یه موتوری دو ترک وایستادن. شروع کردم به مثلا انگوش به نشانه تهدید تکون دادن, دادن و آره میزنی لپ میگفتن بر همین دنبال تاکسی اومدن اومدن ایمو. تا رسیدیم روی پل گیشا رو پل گیشا بعد این راننده تاکسی ای عجب و خدای این چرا بعد یه گفت یه ران تاکسی برگشت آقا گفت شما شمری خلاصه. بعد میگم جایی به یه جایی رسید گفت که آقا من دنبال درسم اون همون پل گیشا پیادش میکنه <تصفيق> میکنه رو بعد میگم حط یاده شدم شاکی گفتم که آقا بذا برم من با این موتوریار همینجوری دنبال چیز دونم وایساده بوده برم با این موتوریه گفتگو بکنم توجیه کنم که آقا من بازی میکنم اون در شما شم نیستم میگفت من که رفتم به سمتشون برگشتم و پل خلاف فرار کردن ایوه. یعنی اساس که داشتن پوش و اینا میدارم بعد که یه در میاد به سمتشون دیگه کم رو بردن به فرا کردن کلند دارن شهم روها در ایران کلند اینایی که تو تعذیم جای شهم بازی میکنن من شاید خیلی داستان دارم من خودها خیلی پیشو باده که کتک خوردن از طرفداران امام حسین و اختراجاتشون در اومد. احتمالاً شب تو این ایام من یه نگاهی میکردم حاشیه زیاد داشت به خاطری که مثلا یکی دو تا عکس خیلی بامزه تو فضای مجازی دار اومد بود یا عکسی جالب بود که حالا من نمی‌دونم عکس جدیده یا قدیمیه ولی تازه داغ شده بود. میگه عکسی بود که آقای لاریجانی در یک مجلس تزیه نشسته آقای لاریجانی رئیس مجلس علی لاریجان. و داره داشته تحصیح نگم که بعد ظاهرم آشنا در اومده با شمر ماجرا بعد شمر رفته داره بایستده اینجا داره تو عکس داره با آقای لاری جانی شده بیزن کلی شوخه کرده بودن کاربرا برای باش که مذاکرات شمر با آقای لارجانی در جریان و این حرفا یه اکس بامزهی دیگه هم بود که شم ظاهران داشته بازیگر نقش شم با همون حیبت شمر رو اینا داره موبایلش چک میکنه که <تصفيق> یه شوخی بامزهی که باش کرده بوده این بود که شم رفته داره زیر ستوسایی ماموسین کامنت <تصفيق> فوشو اینا میزاره <تصفيق> یه صحب... توییتی هم بود آمرونا توییت کرده بود موقع همه چی سیاه‌سفید بوده اینا از کجا میدونن شمر قرمز میپوشه دقیقاً آره موقع سیاه‌سفید قدیمی بوده دیگه آره. اصلا فکر کنم بازیگرایی که نقشای شم رو این چیزا رو قبول میکنن باید دار مواظب باشن مراقب خودشون باشن ببین چقدر حرف راجع به شمر داشتی من میگم متخصص رو شناسی میگه چرا به من میگی متخصص شمر به شمر نمیخوره برادر من حالا ندیدم از نزدیک قرمز میپوشم یه شمشیر دا دا هم دادید نزدیک ندید نزدیک دمشون متاسفانه ممنونم از پروفسور جلال سعیدی متخصص شمشناسی برنامه موفق فقه باشید خواهش میخوام شما را به شمش بویس بر خورب شما. <تصفيق>